میگویند منحرف شدن مرتد شدن دین را عوض کردن چی در زمان پیامبر پیامبر رفت در منا زور و عصر را دو رکت خوند قصر خون. رفت برای حج در زمان خلافت خودش زور و عصر را قصر کرد عمر رفت قصر کرد عثمان تا دو سال اول خلافت رفت قصر کرد ولی بعد از دو سال چار رکت خوند چقدر دین خدا را وحی کردن باز می نویسن سلام کتاب سنی فلان کتاب سنی فلان کتاب سنی فلان کتاب سنی, سنی, سنی بیچاره دانش آموز این همه کتاب های سنی را اسم را می بیند حواله سفر می بیند مات می شود کتاب سنی می سن عثمان قانون پیغمبر را وحی کرد قانون ابوبکر را وحی کرد قانون عمر را وحی کرد حتی دو سال خودش هم بر اون قانون عامل بود چیکار شد حالا این چهاتر نائم تاکن روایت را آوردن آوردن آوردن تا جایی که بنافر بود جایی که بزرر شون بود نقراضش کردن, کردن لا تقرب السلاة قرآن گفته حسنی فرقی در پاکستان میدیم قرآن گفته لا تقرب السلاة به نماز نزدیک نروید لا تقرب الصلاة اصلاً نزدی که نماز نروی آتو که یہ کمی جلوتر بقام لا تقرب الصلاة و انتم سکارا گفتے در حال نشای نزدیک که نماز نروی چی گفتے نزدی که نماز نروی چرا جمله از وسط قیشی می روایت را استناد میکنه از قطب احل سلط می تا اینجا که عثمان تا سال دو رکعت اما سال سوم به بعد شار رکعت اما این را ادامه نمیده که همونجا که چهار رکعت خان یک بند خدایی بلند شد گفت ای عثمان علتشی پیامبر دو رکعت خان ابو بکر دو رکعت خان عمر دو رکعت خان خود شما تا دو سال دو رکعت خواندید حالا چهار خواندید امروز روز عوض کردید قانون را این موضوع چیست؟ عثمان گفت موضوع این است که من در مکه زن گرفتم جناب رسول الله صلی الله اللہ وسلم خرموده هر کسی در یک شهری زن بگیرد اون شهر محل اوست و در آن شهر مقیم است مقیم باید چار رکت بخاند من در مدس مقیمم من چار رکت خاندم این چه اشکالی دارد چه عیبی دارد کجای دین پیامبر عوض شد کجای دین پیامبر عوض شد مغرازش کردن وسط روایت را قیشی کردن پیغمبر درکت خاند ابوبکر درکت خان عمر دو رکات خان عثمان تا دو سال دو رکات خان بعد از اون رکات خان تا اینجا که اگر تحریف کنند هر کسی بشنود راست ذکر میکنند ای عثمان چرا این ظلم را انجام داد نماز خدا باید عوض کرد همه رفتند اونجا دو رکات خاندند قصد کردند این چرا چار خاند حضو یه قدم برو جلوته یه قدم برو جلوته چرا اون جمله را ذکر نمیکنی که در همون عثمان جواب داد؟ که علت چار بخاندن من اینه که من محلی شدم متأهل شدم در این شهر حالا مسکل من این منزل منه انسان مگه در منزلم قفر میخوند یا در سفر می میخوند اون زمانی دو سال که من از مدینه میامدم به مکه مطافر بودم متأهل نبودم الان اینجا تاهل دارم ناچارم چار بخاند چی تغییری داره چی که این شریعت هست با این نوع روایت با این نوع تحریفات یا مثلا یکی از موارد، یکی از موارد که ذکر میکنن، حوالی دادن، روایت ابن حجر، حواای ابن حجر نوشته، ابن حجر صنی متعصب است، باخته، بین در کتاب قو نوشته، اینا روایات کودی صن را هم قبول نمیکنه، خو چی نوشته، روایت ابن حجر است که درنوع رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت به معراج اونجا از پیش رب العالمین تقاضا کرد ای الله بعد از من علی را جانشین بگردان خود تقاضا میکند بعد از من علی را جانشین کند روایت هم از یک سنی متعصف سرخص و حافظ الحدیث از این نیست که سنیه قبولش نکنند در سوایخ ابن حجر نوشته روایت را دیدم بعد نیست سوایخ را هم داش کند سوابق رو کردن نزوری کی روایت را بررسی کنم باز باعث کردن سبحان الله چقدر واقعا دلیل است عجب بلا و دوزی که در کف چراغی دارد عجب دل و دوزی که در کف چراغی دارد با چه این یعنی فکر میکنید سوابق ابن حجر را ما نداریم فکر میکنید ما نمیتوانیم اون رو بات کنیم بخوانیم فکر میکنید این روایت را کسی دنبال نمیکند روایت را باز کردم حالا اگر پرزن روایت اگر درست است باید تا آخرش بخواه اگر نادرست هست و جواب داده شده خب جواب داره چرا نوا... روایت را پیچی می کنی چرا تا آخر نقل قول نمی کنی روایت چیست روایت رابیه حالا کار ندارم که ابن حجر روی این روایت چه نقده کرده و چه ای داده او کار ندارم خود روایت را ببینید. روایت اینه که پیامبر در یا الله بعد از من علی را جانشین بگردان فرشتگان آمدن گفتن یا رسول الله این دعا را نکن این تخاظار را مطرح نکن خب چرا خب چون الله تصمیم گرفته بعد از تو ابو را جانشین بکنه حالا چرا این دنبالش نمیخوادیم اگر روایت ابن حجر معتبر است خود دنبالش اینه فرشتگان دعا بشه دادم که آقا شما تخاظار نیکنید برای علی اما علی نوبت چارم. نقطه اول مال ابو بکر احتمال شده اگر این روایت روایت معتبریه که اینه اگر معتبر نیست که اول معتبره چل من استدلال نمی‌کنم این دیگه خلاص واسه است آیا با این استدلال های دلخوش کن میخواهید جوانان ما را فریفتید مگر ما خوابیم شما این روایت ها را به رخ جوانان ما میکشید مگر ما ثوابت ابن حجر را نداریم مگه ما مسلم را نداریم ما بخاری را نداریم روایت های دیگر را نداریم که شما این روایت ها را قیف و غریب بکنید بر روح جوانان این اعضای ما بکشید که فلان کتاب نوشته سبحان الله